ريه فاتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملايكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وربا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدیف. به نام الله که بخش و با رحمت است ستاگش مخصوص خدایی است که آفریننده آسمان ها و زمین است همان خدایی که رشتگان را رسولانی ورار داده که صاحب بالهای دو گانه و سه گانه و چهار گانه دارای توانایی های مختلف هستند هرچه بخواهد در آفرینش می و خداوند بر هر کاری تواناست رحمتی را که خداوند برای مردم بگشاید کسی نمی تواند از آن جلوگیری کند و چیزی را که خداوند جلوگیری نماید کسی غیر از او نمی تواند آن را به مردم برساند بدانید که او قدرتمند حکیم است. ای مردم نعمت خدا بر خودتان را به یاد آورید آیا خالقی به جز خدا هست تا شما را از آسمان و زمین روزی دهد هیچ معبودی جزو نیست پس چرا از مسیر حق منحرف می ای پیامبر اگر تو را تکسیب میکنند بدان که پیامبران قبل از تو را نیز تکسیب کردند بدان که سرانجام همه کارها به خدا باز می یا ایوه الناس این وعد الله حق فلا الحیات الدنیا ولا بالله ای مردم بعده خداوند حق است مراقب باشید زندگی دنیا شما را نفریبد و شیطان شما را نسبت به خداوند بزرگ مغرور نکند راستی شیطان دشمن شماست شما هم دشمن او باشید بدانید که او همواره پیروانش را دعوت می کند تا از دوزخیان باشند. کسانی که به حقایق کافر شدند، عذاب سختی برایشان محییه است. و کسانی که به حقایق ایمان آوردند و عمل کردی نیک و شایسته دارند، برای آنها مغفرت و پاداشی بزرگ است. آیا آن که زشتش در نظرش زیبا جلب گرمی شود؟ آنچنان که آن را عملی نیک و شایسته می همانان همانند کسی است که عمل صالح دارد خداوند هرکس را صلاح بداند در گمراهی میگذارد گذارد و هر که را صلاح بداند به راه نجات هدایت می کند بنابراین جان خودت را به خاطر شدت بر آنان از اینکه چرا به حقایق ایمان نمیآورند تباه مکن زیرا خداوند نسبت به عمل کردشان داناست الله کسی است که بادها را می فرستد تا عبرها را به حرکت درآورند و ما نیز آنها را باربر کرده و به سرزمین های مرده می بریم تا زمین مرده را زنده گردانیم زنده شدن در روز قیامت نیز چنین است من کان يريد العزه فلله هرکس خواهان عزت است بداند که تمامی عزت و اقتدار از آن خداست سخنان پاکیزه به سوی او بالا می‌روند و این عمل کرد خوب است که آنها را به اوج الهی میرساند با آنهایی که فریب کارانه دست به کار زشتی می شدند برایشان عذاب سختی محیاست حالان که فریبکاری اینان نابود شده نیست این خداست که شما را از خاک آفرید و سپس از نطفه آنگاه شما را همسران یک دیگر قرار داد بدانید که هیچ ماده باردار نمی شود و بزه حمل نمی کند مگر به علم خدا و هیچ انسانی عمر طولانی نمی و هیچ کس از عمرش کم نمی مگر مگران که در کتاب علم الهی نوشته شده باشد بدانید که این امور برای خداوند آسان است دو دریا یکسان نمی باشند یکی دارای آبی شیرین و گباراست و دیگری شور و تلخ اما از هر دو گوشت تازه میخورید بعض و از آنها استخراج میکنید و خود را با آنها آراسته میسازید کشتی ها را در دریا میبینی بینید که انباج را می شکافند و به پیش میروند. تا شما روزی خود را از فضل و کرم الهی جستجو کنید شاید نعمت نعمتهای الهی شوید خداوند شب و روز را از دل یک دیگر در می آورد و خورشید و ماه را مسخر کرده هر یک تا سرآمد معینی به حرکت خود ادامه می دهد. آری الله پروردگار شماست. حکومت از آن اوست و کسانی را که به جای خداوند میخواانید حتی مالک پوست نازک یک هسته خرما نیستند هرچان ها را بخوانید، دعای شما را نمی و اگر هم میشنیدند، شنیدند اجابت شما را نداشتند و در روز قیامت خود آنها شرک ورزی شما را انکار می کنند علاوه بر همه اینها آنها هرگز نمی تبانند مثل خدای دانا تو را از حقایق آگاه سازند یا ایوه الفقراء الله و ای مردم همه شما نیازمند خدایید حالان که خدا بی و ستودنی است. اگر اراده کند می تواند همه شما را از بین ببرد و خلق جدیدی بیافریند و چون این کاری بر خداوند سخت نیست هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نخواهد کشید و اگر مجرمی گران بار کسی را برای حمل گناهانش به یاری طلبد او را یاری نخواهد کرد اگر چه از خیشاوندانش باشد تو فقط کسانی را هشدار میدهی که در نهان نسبت به پروردگارشان حراسانند همان کسانی که نماز به پای میدارند بدانید هر کس خود را از آلودگی ها پاکیزه گردانت به نفع خیش کار کرده است و سرانجام همه به سوی خداست. نابینا و بینا یکسان نیستند همچنان که تاریکی و نور یکسان نمی باشند و باد داغ و سوزان نیز یکسان نیستند مردگان نیز با زندگان یکسان نمی باشند. بدان خداوند می تواند سخن خود را به گوش هر کس که بخواهد برساند. حالان که تو نمی سخن خود را به آنها که در قبر ها به سرمیبرند برسانی تو فقط هشدار دهنده ای، ما تو را به حق به عنوان یک بشارت دهنده و هشدار دهنده فرستاده ایم. همچنان که هیچ ملتی بدون هشدار دهنده نبوده است. و اگر حقانیت تو را می کنند بدان که پیامبران قبل از تو را نیز تکذیب کردند پیامبرانشان با دلایل روشن و با نوشته ها و کتابی روشنگر به سراغشان آمده بودند سرانجام کسانی که حقایق را انکار کردند به عذابی فرو گرفتند تصور کن مجازات من چگونه بود آیا نمی بینی خداوند از آسمان آبی نازل می و ما به واسطه آن انواع میوه را در رنگ‌های گوناگون گناگون همچنین در کوه‌ها راهایی با رنگ مختلف چون سفید و قرمز و سیاه سیاه ایجاد کرده ای. حتی آدمیان و جنبندگان و چهارپایان رنگ مختلفی دارند. آری این چونین است. از میان بندگان خدا فقط اهل دانش از او می حراسند. بدانید که خداوند قدرتمند و با است. کسانی که کتاب الهی را تلاوت می کنند و نماز به پای می‌دارند و از آن چه روزیشان کردیم دیگران را نیز چه پنهان و چه آشکار بهرمند می کنند، امیدوار به تجارتی هستند که هرگز زیان نمی کند خدا پاداششان را بی و کاس می دهد بلکه از فضل و کرم خود بران می افضاید زیرا او آمرزنده و قدر شناس است. آنچه از این کتاب به تو وحی کرده ایم حق است. تصدیق کننده کتب آسمانی پیشین است، بدان که خداوند نسبت به تمامی بندگانش آگاه و بیناست سرانجام این کتاب را به گروهی از بندگان منتخب خود به میراث دادیم اما جمعی از میان آنها به خود ستم کردند جمعی میان رو بودند و جمعی دیگر در خیر و خدمت به ازن خدا از دیگران پیشی گرفتند این همان فضل بزرگ است آنها به بهشت های جاودان داخل می شوند و در آنجا با دست از تراغ و مربارید آراسته می و لباسشان از حریر است به گوگند سپاس خدایی که از ما غم و اندوه را زایل کرد زیرا پروردگار ما بسیار آمر زنده و قدر شناس است همان خدایی که از روی فضلش ما را در سرای جاودان جای داد تا نرنجی به ما رسد و نه خستگی بر ما غلبه نموید و کسانی که به حقایق کافر شدند برای آنها آتش دوزخ است نه فرمان مرگشان صادر می شود تا بمیرند و نه تخفیفی در مجازاتشان داده می شود ما اینچنین هر کفران کنندهی را مجازات می کنیم. آنها در جهنم مرتب پریاد می کشند که پروردگاه را ما را از اینجا بیرون بیاور تا اعمال شایست و نیکی غیر از آن چه قبلا انجام داده بودیم انجام دهیم آیا شما را به اندازه کافی عمر ندادیم تا کسی که اهل پنده است پند گیرد؟ زمان که شما را پیانبری هشدار هم آمده بود اکنون بچشید عذاب دستاوردتان را که ظالمان هیچ یاوری ندارد. خداوند دانای ریب و های آسمان ها و زمین است و او بر آنکه درون سینه است آگاه است اوست که شما را جانشینانی در زمین قرار داد بدانید هر کس به حقایق کافر شود کفرش به ضرر خودش است و این چون این کسان کفرشان نزد پروردگارشان جز بر خشم و غضب الهی نمیافزاید همچنان که کفرشان فقط زیان و خسارت آنها را افزایش میدهد بگو آیا شریکانی را که به جای خدا میخوانید، نمیبینید؟ به من نشان دهید آنها چه چیزی در روی زمین خلق کردند؟ یا در آفرینش آسمانها چه مشارکتی داشتند؟ آیا ما بر آنها کتابی فرستاده ایم که به آن در این مورد استناد کنند؟ نه ظالمان فقط به یک دیگر و ادعا دروغین و فریب کار را به راستی خداوند بزرگ آسمان ها و زمین را نگاه داشته تا زوال نیابند و اگر به زوال خود رسند هیچ احدی غیر از خودش نمیتواند آنها را نگهدارد. بدانید که او بردبار و آمرزنده است. به خدا قسم های سختی میخورند. که اگر برای آنها پیامبر حشداردهندهی بیاید از همه امتهای دیگر بهتر و متعاریتر میگردند. و انگامی که پیامبر حشداردهندشان به سراغشان آمد جز بر نفرتشان افزوده نشد اینها همه به خاطر استقبارشان در زمین و نیرنگهای بدشان بود بدانید که نیرنگهای بد فقط به اهل خودش می رسد. آیا؟ در انتظار چیزی غیر از سنت پیشینیان نشستند آنها مورد عذاب واقع شدند در سنت الهی قوانین و مقررات خداوند نه تبدیلی خواهی یافت و نه تغییری آیا در زمین سیر نمی کنند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنها زندگی می کردند چگونه بوده است؟ آنها از اینان نیرومندتر بودند هیچ چیز در آسمان ها و زمین وجود ندارد که خدا را ناتوان کند تا بتواند از دست خدا بگریزد زیرا او آگاه و قدرتمند است اگر خداوند بخواهد مردم را به خاطر دستاوردشان مجازات کند هیچ جنبندهی بر روی زمین باقی نخواهد ماند اما خداوند مردم را تا مدتی معین مهلت داده است هنگامی که اجل آنها فرارست هر کس جزای دستاوردش را می بیند بدانید خداوند نسبت به بندگانش بیناست فَإِذَا فا جَاءَ أَجَنُونَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا صدق الله العلی العظيم